بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلالله الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین اگر بگیم که برای خداوند متعال چم صفتی ثبوتی است در عربی اینطوری میگد کم صفتا ل... کم ثبوتیه لله تعالی کم صفتا صبوتیتن لله تعالی اگر بگیم که برای خدا مده متعال چند صفت صبوتیست کم،, کم صفتن صبوتیتن لله تعالی الان عجیب نه کم صفتن لله تعالی بگیم جواب بگیم کم چی؟ کم یعنی چند خب؟ کم یعنی چند آه انشاءالله ثمانیتن ثمانیتن اوصاف لالله تعالی برست ثمانی کم صفتا ثبوتیتا لالله تعالی برست خب حالا چند نفر دو طلب شد که قیم را بگه یک، دو تا سه تا خب الحمدلله همگی بلد شدیم خب شما دست بلند کردیم کی دست بلند نکرده خب اون مزود طرف بگی هر کسی برده اون مزود طرف خب, خب. ببین شما ببن. عوض بالله منش شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم القیون سقی مبالغه از ماده قیام است و همین دلیل با وجود گفته می شود که قیام او وزات او است آها احسن و قیام همه موجودات بر او باشد. علاوه بر این پایم و شدبیر امور و مخلوقات نیز می باشد آها احسن خیلی عالی بود ببین اینجا دو نقطه داشت یک خودش قیام و بودنش ذاتی باشن نکته بعدیشان همه این بود که قیوام و بودن دیگران با او ارتباه پیدا کنید. و چون این کسی جز خداوند متعال دیگه هیچ کسی نمیتونه باشه همه هستی بودنش با بودن خداوند متعال همه است برس شد؟ توجه به همه نکته که شان خیلی قشن بود گفته شد قیوم فقط صفت خداوند متعال میتونه باشه. لذا بندگانش اگر واژه قیوم را با به به عنوان اسم قرار بده قیوم تنها نوبت بشه باید بشه عبد القیوم سئنشر انتر من دعلا سیشن انتر خیلی علم و هو العلم الدرس الخامس اوصاف الله تعالی السلبيه صفات سلبیه خداوند متعال السلبيه یعنی صفات الجلال و التنزيه. الله تعالى منزه عن كل نقص ما, زهن... ما در ذهن مومه که وقتی همی تعبیرات میخوانیم شما میفهمین واقعا قابل فهم و قضیه نیست صفات الجلال و تنزیهش به صفاتش با هم جمع صفات است جلال یعنی خداوند متعال از اون اون وصف جلیتر هست سرچشمه صفات از اون صفاتی که حالا میخوایم جلیتر هست جلیتر هست یعنی چه یعنی بالاتر هست یعنی این اون ممکن در فارسی چیزی بگن ولی اینجا جلال منظور شه که خداوند متعال از این صفت بالاست این صفت به خداوند متعال نمیزیبد زیبر اینطوره و تنزیه، تنزیه همون نزیبیدنه دیگه نزیبیدن نزیبیدن خوب نمیزیبه نمی نمی خب پس میمینی جلال چی با جلال؟ جلال خوده ببین جلال, جلال جلالهو هم داریم جلال جلالهو یعنی ب... تقریبا یعنی خداوند متعال مقامش خیلی تر از این هست این اوصاف که فعلا ما شما برمیشونم خدا از این صفات جلال هست. مبرست. یعنی از این اوصاف خیلی دامراهی با بارست. بود نه. مقام بلند که بینیسیم که بازو صفت کمالی میشه. با صفت جلالی بینیسیم. جلالی یعنی چه؟ یعنی خداوند متعال پاک هست. چه؟ پاک هست. تنظیه هم ولی بتا من میشن پاک را در تنزیه بینویسیم خود جلال را در چی بینویسیم برای زی که فهمش کم ساده تر باشه از این صفت به مراتب بالاست اینطوری طریقه بینویسیم از این صفت به مراتب بالاست الله الله تعالی منزهون عن کل نقصون خداوند متعال پاک هست از هر نقص ما این عكس باغ بلا وصفات سلبیه دقت میکنین دقت ما شما گفتیم که صفات کمال زیاده بعضی از صفات کمال را ما دیروز خوندیم که 8 تا بود امروز هم صفات نقص و عیب خیلی زیاده که خداوند متعال از همیشون است و از همیشون منظه هست درست ولی این هفتار ابروز ما شما میتونه به اوصاف سلبه که زیاد بد هست و کره هست میخوانه درست لیس به محل خداوند متعال محل نداره محل, محل معنیش چیست؟ محل ممکن است دو تا معنی تصور برش داد ها؟ یکی این که خداوند واقعا در جای خاصی نیست او محل حوادیث هم میگیم یکی این که خدا در جای خاص نیست یعنی مثلا بگیم اینی خدا است اونجی خدا موضوع الله نیست اینطوری نیست یکی هم این که خداوند متعال محل حوادیث اونچه دوستادم گفت نیست حوادث یعنی مثلا ما و شما گاه خوش میشیم گاه دیگ میشیم این حادثه محسر ما آه, <سؤال> آه، حادثه آره خداوند متعال <سؤال> از این چیزا؟ خداوند متعال این گونن نیست لیسه به محل لتغییرات خداوند متعال محل تغییرات نیست ولی ما و شما محل تغییرات هستیم دیگه برست شد؟ ما و شما گاهه زرفیت, اه, قابلیت شادی رو پیدا میکنیم گاه قابلیت غم رو پیدا میکنیم مثلا. گاه قابلیت عیب رو پیدا میکنیم گاه قابلیت در ما مثلا فعلا خود زرفیت قابلیتش هست یعنی در وجود ما و شما محل و زرفش ممکنه همه لحظه نباشه درسته؟ اینمی ای که ما و شما در اینجا نشستیم الحمدلله هیچ کدام ما و شما محل پاشکستگی نیستیم بالي خب ممکنه بعدا سین آره ویرات نیست خب اینو برای زی گفتیم که چی هم. خداوان خداوند اینطوری محل نیست درست خداوند همون گونه که هست همون گونه هست هیچ تغییری درش از اول خلقت تا آخر خلقت به وجود نمی قاید همه لیسه به محل لتغییرات والعوارض خدا محل عارضه نیست درست ؟ شد؟ خدا محل عارضه نیست عارضه رو میدنیم چی هست؟ عوارض آیه یک عوارض در چی؟ فی الحوادیث در حادثه ها درست ها؟ کل غفله آه. ببین ما شما گاه عالمیم گاه جاهلين. ولی یک دفعه عالم و جاهل نیستیم عالم هستیم ولی غافیلیم درست مگه همین که گفته ای غافل دیگه غافل معنی نداره همین که یک نفر گفته ای غافل اون لحظه نفر از غفلت دیرون میشه متوجه شد؟ این توریست. آدم گاهه غافل میشه دیگه نمیشه؟ به کل غفله، غفله تا دیگه مغافل غفله تا دیگه مغافل معنیه به خبری نه، به توجهی به توجهی, توجهی. توجهی. گاهه آدم به توجه میشه دیگه نه؟ خب، آدم در فکر فروم موره، در پیش آدم بخبری. یک نه، مثلا دختر، بچه آدم، یک کار آف، چای چپه همون ایش خبر میشه؟ شجور احنا. احنا. سعی شد؟ خدا متعال این گونه نیست یعنی دائم امو صد فصد هست متوجه شدیم حالا آلا لیسه به محل را فهمیدیم چیه؟ نعم هم این که در جای خاص نیست هم این که محل تغییرات و عوارض نیست نه محل تغییرات و نه محل عوارض. ليس نیست. ليس به محلین یعنی نیست به محل تغییرات و عوارض. تمام؟ احسن خب. خب. خب. خب. خب. خب. احسن دیدنی. لا يمکن. رؤیته تعالا دیدن خداوند متعال ممکن نیست رؤیت دیدن لا یمکن رؤیته تعالا دیدن خداوند متعال ممکن نیست لا فی دنیا و لا فی الاخره نه در دنیا و نه در آخره و الصفه الثالثه لَیْسَ بِالجِسْمِ وَالمُرَكَّبِ کدامینِ مُتَأَلِّجَسَمَ هم نیست؟ هم نیست. جوهر آه، مراکب ترکیب شده؟ چی جمع شده هم نیست. نیست، نیست، نیست. لَیْسَ چی؟ آه، نیست با جسم وَالمُرَكَّبِ نیست با ترکیب شده. اچ عن الاجزا خداوند متعال ندارد؟ جوز, جوز نداره شب نه اله من ببینیم. این یک جز خود امی چند جوز داره این هم جوز خداوند دو نه اه؟ چون که خود جیست لئنه لی انه قطعا هما یعنی همون دوتا کدام دو دوتا یک جسم یک مرکب چون که این دوتا یعنی جسم و مرکب حدا یک محدوده است یک اندازه است ببین که به من نگاه کنی فعلا جسم نه محدوده من از زمین تا اینجاست درست شد از بلندی و از این طرف هم اندازه کستیم پس من به اندازه کلی از خانه نیستیم درست دیدی که اندازه شد هر اون که جسم داشته باشه حد داره اندازه داره هر که حد داشت خود حد معنیش اینه که یک قسمت هست یک قسمت نیست همین که یک جای بود یک جای نبود معنیش اینه که نقص کمبوده من اینجا هستم کمبوتی ندارم ولی در اونجا نیستم کمبوتی دارم درست؟ همه جا کماجواس خانجواس خدایی که کمبود داشته باشه به خدا قبال نمیده سایشه معنای مطلق چون که اون جسم و مرکب حد اندازه است محدود است فنقصا وقتی حد و اندازه شد نقص حساب میشه درست لأنهما چونکه اون دوتا جسم و حدن حد و محدوده است محدوده, محدوده رو خمیدانیم نه؟ یعنی یک محدوده دیگه محدود وقت محدوده یعنی وقتی که محدود شد نقصن نقص حساب میشه دیگه نمیشه؟ نقص نیست که خدا, ن... خدا نعاذ بالله نقصه؟ نیست نیست خدا ناقص نیست خدای ناقص خدا شده نمیتونه آره؟ آره چار لا شریک لهو ولا انداد لا شریک لهو ولا انداد نه شریک داره و نه ند داره انداد داره بل هو واحد بلکه او کوه یعنی او خداانده متعال، واحدون، یک هست، احدون، یگانه هست، فردون، یک فرده، صمدون بی است. هست لم یتخیب صاحبتن که همسان برایش نیست لم یتخیب یعنی برای خودش همانند هم ندارد صاحبه کسی که در کنارش مثلا باشه یا شبیهش، شبهش نه یعنی در کنارش همکارش باشه به طبیل هم همصحبتش باشه برسه؟ ولا ولدا و فرزند هم نه خدا نه والد هست نه مولود هست برسه؟ نه به دنیا میاره و نه به دنیا آمده برسه؟ یعنی آره به طبیر چی شن نه فرزند به دنیا میاره نه فرزند کسی هست آره احسن و الصفه الخامسه لیسه بمعنه ليس بمعنه یعنی ليس خدا منده متعال معنه نداره یعنی چی معنا نداره یعنی صفاته تعالی عین ذات و صفات خداوند متعال عین ذاتش هست اضافه بر ذاتش نیست, نیست. دقت می‌کنین ما شما فعلا عالم آگاه شدیم یا نه نه فیلن یک کم آگاه هستیم یا نیستیم همون زمان که تازه به دنیا آمده بودیم آگاه بودیم نه پس حالا که آگاه شدیم این آگاهی ما معناست به قد میکنه نه ذات ذات ما آگاهی نیست هست یا نیست ولی خداوند متعال ذاتش است. فاهمیدن؟ از این جهت است که میگه خدا معنی نم. نه عین از زواید اضافه از ها زیادی ها ببین خب دقیق میکنی چه میگم علم زواید جمع زایده زایده اضافه گیز زیاد دیگه دقیق میکنی چه میگه علم وقتی به من نسبت داده میشه اضافه میشه بالای من زیادی هست بالای من من علم نیستم علم اضافه آمده روی ام. شما هم همینطوره شما علم نیستین بلکه اگر عالمه شدین علم بله اضافه شده همطوره نیست واقعا؟ نه اینطوره. خداان گونه نیست که علم بهش مثلا اضافه شده باشه نه، ذات خدا, خدا علم هست فهمیدین ذات خدا علم هست خب فامیده دیگه نه؟ باید شما رو جلیمه به محتاجیم لیسه به محتاجیم خب بگین غنی است غنیم به بل داشت بلکه خداوند متعال ذاتن است محتاجیم ذاتن غنی غنی خداوند غنی هست دقت میکنه که ما و شما ذاتاً فقیریم الانسان فقیرون به آدمی در ذات خودش فقیر حتی اگر یک کس غنی هم شده باشه اونمو غنی اصلا اما غنی مرد یا ثروت اصلا از اون نیست آره نه غیر نبوردنش او که هیچی همون لحظه از خودش نیست میتونه خدا نابودش کنه. برای پس از خودش نیست آدمی و غیر آدمی ذاتا فقیر اون که ذاتا غنیست خداوند متعال خداوند متعال غنی به ذات از همه چیز و همه کس هست از همه چیز و همه کس دقت کنین دو تعبیر دارم یک دفعه آدم ما شما غنی از چیزی مثلا کسی فرض ندیم کسی خانه داشته باشه از خانه غنی هست یعنی داراست دارای غنی از او غنی از چیزه اون کسایی که دارای دارای غنی از چیزه دقت میکنید یک دفعه غنی از کس میشه غنی از کس یعنی چه مثلا طفل اگر پدر یا مادر نداشته باشه فقیر هست چون نیازمند پدر و مادر هست درست شد؟ من تعال هم غنی از چیزه و هم غنی از کس کردیم، می‌فهمی؟ دیگه بعضی نه؟ و نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه عادل نه نه عادل عادل تنهایی رو که بگیم کافی است ولی حکمت و اگر اضافه کنیم به شبهات پاسخ داده سرعتر میشه چطوری سرعتر میشه؟ مثلا یک نفر سوال میکنه که خب من چی کار بد کرده بودم یا چی شده که خدا فهمه اینی چیز را آ حکمت درش هست عدالت درش هست من میشه ما سوينا <مسو> <مستشف> <تصفيق> آره. اگر کلمه عدالت رو به تنهایی بگیم فاسف شبهات و بهات هست ولی سریع ممکن جواب نده حکمت رو که اضافه کنیم سریعتر جواب میده شو؟ آم. و الله علی سیدنا محمد و علیه